بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الثاني العوارض المكتسبة عوارز سماوير خونديم الان رسيدين بعوارز اكتصابي اولا الجهل اولين عوارز اكتصابي جهل هذا شو عرف انجاو هشتم الكتاب الجهل لا ينافي الأهلية وانما قد يكون عذرا في بعض الاحوال وهو اما يكون فی دار الاسلامی او فی غیر دار الاسلام می فرماید جهل اهلیت رو نافیه نمی کند بلکه اوزر می باشد در بعضی از حالات اهلیت وجود هیچ اهلیت رو نافیه نمی کند <تصفيق> <تصفح> <تصفح> و جهل یا در دار الاسلام هست یا در دار غیر اسلام همون دار الحرب ابتداميات بحث جهل در دار الاسلام بر مورد بررسی قرار میده و صفات جهل در دار الحرب قال في دار الاسلام ان الجهل لا يعد عذرا في دار الاسلام لان العلم فيها مفروض على من فيها فلا يعذر المسلم بجهله الأحكام العامة الواضحة التي لا رخصة لأحد في جهلها وهي الثابتة بالكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة أو التي انعقد عليها الإجماع كوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا ونحو ذلك ولا يستثني من ذلك الذمي بفرماية جهل شموردنا مشابات أوزر دار دار, دار الإسلام آقا دردار الاسلام به عنوان عذر پذیرفته نمیشه زیرا علم دردار الاسلام فرض هست بر افرادی که درش هستند پس در نتیجه معذور نیست مسلمان با جهل داشتنش به احکام عموبی واضحی که کسی رخصت ندارد در جهل به آن خودش میگه آخر و این احکام عبوبیه واضح کدومه هستن؟ همونه هستن که ثابت هستن با کتاب این قرآن سنت متواتر یا سنت مشهور ممتازم. یا اون احکاماتی که برشون اجماع وجود داره آقا در اینها در دار الاسلام جهل عذر حساب نمیشه مانند چی؟ مانند واجب بودن ناس حرام بودن شراب حرام بودن زنا و چیز. حالا یکی بیاد در دار الاسلام زنا بکنه بگه آقا من ندونستم که حکمش حرامه این عذرش پذیرفته نمیشه بل در دارال اسلام میگه زمی شخص زمی غیر مسلمان که در حکومت اسلامه این هم از این چیز استثناء نیست پس عذر دیگه در دارال اسلام زندگی کن خب پس اوزر در دار الاسلام در عمومی واضح مورد پذیرش دیست الا ان الجهل يكون اوزرا في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف الكتابة او السنة المشهورة او الاجماعة كالنكاح بلا شهود اکتفاء بالاعلان دی قداشت واشید بیگی جوزان که البته جاهل اُسر هست در مسائل اجتهادی صحیح اجتهادی صحیحی که مخالف با کتاب و سنت مشهور یا اجماع است. مانند نکاح بدون شهود اکتفا کردن به اعلان. آقا و ترف میکنی اعلان کردیم دیگه خلاص شهود نگرفتند. آه؟ اینجا اوزرشون پذیرفته میشه ولی در مورد نماز که طرف بگه من نماز نخوندم چرا آقا نماز نخوندی میگه من ندونستم که نماز فرضه خب این دردار اسلام اوزرش پذیرفته خبرم آن قضایی ها شبه خونه ولی و کذالک اما اگر دردار کفر باشه نه طرف دردار الکفر ایمان آورده خب نمازاشون خب نخونده بعدا که بهش بیگن چرا رواز میخوند گفته نبید ندونستم خلاص عذرش پذیرفته میشه ولی یه مسئله دیگه ای مثلا در روزگار ما که دنیا تبدیل به قوله برخی تبدیل به دهکده شده یا تبدیل به یک اتاق شده اینجا باید مثلا اصولیون روی مسائل جدید دوباره شکار کند؟ بحسو برسم ماتب قهمون كتاب السنة تي خدمون يخونينه بيرى. بيجا وكذا يعتبر الجهل بالوقاية أضر مقبولا. كمن نكح امرأة جاهلا أنها محرمة عليه بسبب الرضاعة أو كمن شرب عصير الأنب جاهلا تخمره فإن الجريمة تنتفي في الحالتين ولا إقاب على الفاعل. بيجا جاهل بالوقاية. عذر مقبولی هست واقعی پیش میاد طرف جهل داشته نسبت به اون واقعه مانند که اومده با محرم رضایی خودش ازدواج کرده ندونسته که به سبب شیر این چیشه؟ محرم. یا کسی اومده مثال دیگر آب انگور رو؟ نوشیده ندونسته که آقای این تبدیل به شراب شده قدیما نبیزش میکردن میگذاشتن خب اون تازه که میخوردن دیگه مست کنندگی نداشت تبدیل به خمر نشده بود طرف نمیدونسته که خمر شده اومده اینو چکار کرده؟ ممیدونسه. خورده این عذر حساب میشه میگه جریمه در دو حالت منتفیه هست؟ و اقابی بر فائل نیست چونی در این حالت اوزر حساب میشه پس این شد از دار الاسلام و تفصیل توضیح داد اما الجهل و فی دار الحرب آقا جهل در حکومت غیر اسلام کسی رفته مثلا به عنوان اصلا در یک کشور غیر مسلمان که اونجا تدریس نمیشه احکامات اسلامی مساجد عمومی نیست احکامات عمومی نیست نه. وجاء إسلامها برده آية وجاء جهل وزره صاحب بشي أو نميشي توزيه بيده بقي إن العلم فيها لا يفترز إذ هي ليست دار علم بالأحكام الشرعية بل دار جهل بها وعلى هذا إذا أسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه كالصلاة ونحوها فلم يؤدها فإنها لا تلزمه قضاء إذا ألمها بعلم میگه علم در دارالحرب فرض نیست زیرا دار علم به احکام شرعی نیست بلکه دار جهل به احکام شرعی هست بر این اساس زمانی که میگه شخصی اونجا اسلام آورد یعنی وقتی مثلا می مسجد یا معصدی نیستش درست نمی‌کنی حالا خودتی زبرالا دارم دیرم واسه شخصی اینو دعوت به اسلام داد اسلامو فضی رفته و رفت احکاماتو همه رو یاد نگرفته جماعتی. یا اسلامو اینجا یاد گرفته و رفته منطقش اسلامو قبول کرد پیش که بیاد این خلاصه میگه بر, بر این اساس نمانی که اسلام آورد شخصی اونجا یعنی در دارالکفر در دارالحرب و حقیقت وجوب عبادات رو ندانست بنات در روزه و باقی مسائل در نتیجه اداءش رو نکرد دیگه زمانی که اومد و حکمشونو دانست دیگه لازم نمیشه برش قضا و همچوری و كذلك اذا شرب الخمر جهلا منه بحرمتها فلا اسم عليه ولا عقاب همچوری زمانی که شراب نوشید و به حرام بودنش جاهل بود ندرید ندرید که آقا شراب چیه حرامه دیگه گناه نیست برش اقوبت هم نیست لان المعاخذت و لزوم تکلیف یثبتانی ببلوغ خطاب اله و لیسه دارو الحرب به دارلتی تشیع فی الاحکام. بجزیره با زیرا کردن و لازم بودن تکلیف ثابت میشن با رسیدن خطاب به شخص زمانه که خطاب شرعی علم شرعی به مکلف برسه برش لازم میشن و بیگه دارو الحرب احکام شایه نیستند راج نیستند که یاد بگیره پس در مورد جهل مفصل توضیح داد و ثانیا دوفبین عارضه اکتسابی خطا خطا اشتباه از روی خطا اومد کاری کرد 59 ببینیم آیا این خطا تأثیر داره در اهلیت ها یا نداره اگر در اهلیت ها نداره در بعضی از مسائل آیا تاثیر داره یا نداره خودش اینو مفصل توضیح ده میگه و يمكن تعریفه بانه قاووقو القولی او الفعلی بلا الانسان خلافی خلاف ما مرده ابتدا تعریفش میکنه میگه تعریف خطا این است که واقع بشه یک سخنی یا فعلی از انسان برخلاف خاستش آقا نمیخواد یک کاری رو انجام بده برخلاف خواستش کاری از دستش روخ میده. یا سخنی گفته میشه. میگه و هو یعنی خطا لاینافی الاهلیت به نوعیها هر دو اهلیت رو یعنی هم اهلیت وجوب ما، اهلیت ادار رو نافیه آقا اهلیت ازش از بین نمیره اهلیت ها رو داره بگه دیوانه که نیست که اهلیت از دستش بره اهلیت ادا و اهلیت وجوب که در این حالت دست مگر با مرگش بله پس دیگه خطا اهلیت ها رو نفی نمیکنه چرا میگه لعند العقل قائم خطا بجز ایر عقل وجود داره با وجودی خطا درست خطا میکنه ولی عقل همراهش هست ولکنه یصلح ان یکون عذرا فی سقوط حقوق الله تعالی اما میگه بگه عقل چی خطا اهلیتارو رو نافی نمی کنه ولی صلاحیت اینو داره که اوز باشد در ساقط شدن حقوق الله ببینید خطا اهلیت و نافی ولی صلاحیت اینو داره که اوز باشه برای ساقط شدن حقوق الله برای ساقط شدن چی خودش توزی میده. که خطای علم مفتی ماننده خطای شخص مفتی آقا مجدهد اومده حکم ایک مثلی رو پیدا بکنه در این تلاشش دوچار اشتباه شده به قول صحیح نرسیده خطا کرده خب آیا این گناهکار میشه؟ نه متوجه شدید؟ پس خطا اوضر هست در سقوط حقوق الله و نه خطاای او او لذی الذي جهل القبلة ان اجتهاد یا خطای کسی که در پیدا کردن قبله از روی اجتهاد اشتباه کرد آقا رفت یک منطقه‌ای ندونست قبل کدوم سمته آ؟ موبایل همراهش نبود که پیداش بکنه وسایل روس همراهش نبود تلاش خودش رو کرد تحری و تحقیق کرد به جایین که به این سمت قبل نماز خونه به سمت مشرق مثلا چیکار کرد؟ اینو بگن خطا آئیین اینجا عذره یا نه؟ بگی بله عذره دیگه نمازش دیازی نیست دوباره اثر اونو بخونه یا گناهکار بشه بله خطا فرقی نمی کنه خطا کاری نداره و کذل که یصل حشبهتن تدره و لقوبات المقرره حق الله تعالی که حدود مثل الزنا همچنین صلاحیت اینو داره که شبهی ب دفع بشند مانند حدود آقا کسی از روی خطا اومد چکار کرد؟ زنا کرد خب اینجا حدود از سرش چی میشه؟ حد از سرش برداشته میشه بله پس اگر روی خطا بود حدود اثرش چه میشند؟ برداشتش میشن. پس یک صلاحیت اینو داره که عذری باشه در سقوط حقوق الله و في حقوق العباد و دیگه کجا؟ حقوق بندگان. اد کان الحق عقوبه البته اگر ورود حق بندگان چی بود؟ عقوبتی بود. نه حقوق مالی؟ که به چه شکل؟ اگر اومده به شکل خطا یکی رو کشته. اگه قصص سرش عقوبت سرش برداشته میشه. پس اینجا اگر حق بندگان عقوبت بود خطا عذر حساب میشه. خطا چی بله؟ خانواده راضی نیستن؟ راضی نباشن روز قیامت مجرم هستن کسی که از روی خطا انسانی رو کشته خانوادهش رفتن همچنین قاتل از روی خطا کشته رو بکشن قاتل عمده حساب میشن آقا اون بند خدا از روی خطا کشتی اون روی ماشین زده خطا بوده بله خطا بودن باید ثابت بشه. با بشه بله شما با ماشین یکی ناگهانی بیاد جلوت ناگهانی بیاد جلوت خب این قتل شما قتل عمدی بود یا خطا خطایه دیگه بند خدا پس خطا چی؟ دیداره چرا آقا اقوبت اگر حقش اقوبت بود قصاص نداره ندیه دیه که حق مالیه دقیق کنید بیگه در حقوق بندگان اوز خطا حساب میشه اوزر اگر چنانچه اون حق بندگان چی بود اقوبت بود مانند قصاص لبیاجه بالخطا قصاص با خطا واجب نمیشه لأن القصاص عقوبة كاملة فلا يجب على المخطئ زیر قصاص عقوبة كاملی هست و بر برمخطئ واجب نمیشه لانه معذور چون مخطئ معذوره و انما تجب بالقتل الخطئی الدیتو بله با قتل خطئ دیه فقط واجب میشه پس حقوق الله توضیح داد حقوق بندگان اگر از نوع عقوبت بود توضیحش داد اما حقوق مالی بندگان از روی خطا اومد آغا ماشین یکی رو تباه کرد وجابات پول شو بده یا نه توضیحش میده میگه اما فی حقوق الیباد المالی هم در حقوق مالیه بندگان که اتلاف مال الغير خطا ان فاد الضمان یجب و لا ینهب الخطا عذرا للدفع الضماني میگه اینجا مانند تلف کردن مال شخص دیگر از روی خطا میگه اینجا زمانت برش واجبه و این خطا به طور باشه برای دفع کردن زمانتش. باقا ضامنه بعد پول مرد چکار چیکار بکنه وفي المعاملات در معاملات جي ببديم آي در معاملات إل خطأ أذري هسك ساقط بشه حقوق الديقران يعني آنا ببديم توزيح بقوة في المعاملات لا يعتبر الخطأ أذرا لمنئ انعقاد التصرف وعدم ترتيب أثره وهذا عند الحنفية حتى لو تلق خطأا وقع الطلاق وكذا ينقض باء المخطئ لوجود أصل الاختيار ويكون فاسدا لقوات لفوات الرضا. میگه در معاملات خطا عذر نیست به عنوان عذر اعتبار ندارد برای اینکه که از بستشدن تصرفات میشه او اومده معامله ی زده اومده تلاقی داده اومده ی تصرف دیگه کرده کار دیگی انجام داده خب میگه اینجا در معاملات به خطا یک عذری اعتبار داده نمیشه برای اینکه اون معامله بسته نشه و اون اثرشو نداشته باشه اما این در نزدیکی است، احناف هست حنفیه میگه تا جایی که اگر اومد زنش رو از روی خطا اومد تلاق داد تا جایی که اگر روی خطا اومد چیکار کار کرد طلاق داد بگن تلاقش واقع میشه بمشمومون. تصرف آقا دگه چیه؟ و همچنین بسه بیشه معامله شخص خطاکار به خاطر وجود اصل اختیار اختیار داشته اما فاسد هست چون رضایتی نبوده است، از روی خطا بوده است و رضایت نداشته معامله فاسد هست اما بسه میشه اما خب و این جمهور اما در نزد جمهور علما که شفاییت و غیرهم، هم لایقه طلاق المخته این میگویند که طلاق مختع واقع نمی شود و لا یعتد دو بسائر تصرفات القولیه و بقیه تصرفات قولیش اعتبار ندارد. از روی خطا چیزی گفته آقا اعتبار ندار چه طلاق باشه چی چیز دیگه ای باشه حالا ببینیم استاد زیدان رحمت الله علیه چی میگه کدوم قولو ترجیح میده میگه والله للی نراه راجح هو قول الجمهور آنچه که ما میگوییم قول جمهور راجحه فإن بقي ادب به بجميع اقوال المخطئ لا تلاقی ولا اي تصرف قولی ناخر بشكل يثبت خطاه خطاه میگه شایسته است که هیچ یک از اقوال مخطئ اعتبار داده نشه نه طلاقش و نه هیچ تصرف قولی دیگه بل به شرطی که خطابودنش ثابت گردد بله ایشون البته انسان معتدلی هست بله عراق بوده